اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را آیات الكتاب و قرآن مبین خداوند بخشنده بخشایشگر الف لام را این آیات کتاب و قرآن مبین است. ربما یود الذين لو کافران هنگامی که آثار شوم اعمال خود را ببینند چه بسا آرزو می‌کنند که ای کاش مسلمان بودند. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون بغزار انها بخورند وبحر گيرند وآرزوها آنان را قافل ساست ولی بزودی خواهند فهمی وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما اهل هیچ شهر و دیاری را حلاک نکردیم مگر اینکه عجل معین و زمان تغییرناپذیری داشتند ما تسبیق من امت اجلها و ما هیچ گروهی از عجل خود پیشی نمیگیرد و از آن عقب نخواهد افتاد وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. و گفتند ای کسی که ذکر تو نازل شده مسلما تو دیوانی. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. اگر راست میگویی چرا فرشتگان را نزد ما نمی آوری ما نُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ إِلَّا بالحق و وَمَا كَانُوا إِذًا منظرین اما اینها باید بدانند ما فرشتگان را جز به حق نازل نمیکنیم و هرگاه نازل شوند دیگر به اینها مهلت داده نمی شود و در صورت انکار به عذاب الهی نابود می کردند اینا نحن نزلنا الذکر و اینا له لحافظون ما قرآن را نازل کردیم و ما به طور قطع نگهدار آنیم و لقد ارسلنا من قبل في شيع الاولین ما پیش از تو نیز پیامبرانی در میان امت‌های نخستین فرستادیم من رسول هیچ پیامبری به سراغ آنها نمی آمد مگر اینکه او را مسخره می‌کردند ما این چنین و از هر طریق ممکن قرآن را به درون دلهای مجرمان راه می دهیم لا به خلت الأولين. اما با این حال آنها به آن ایمان نمی آبرند. راوش اقوام پیشین نیز چنین بود ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فضلوا فيه يعرجون واگر دری از آسمان بروی آنان بگشایید و آنها پیوسته در آن بالا روند و قالوا سكرت ابي بل نحن قوم مسحورون بعض میگویند ما را چشم بندی کرده اند بلکه ما سرتا تا پا شده ایم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 إلا من استرق السمع شهاب مبين. مگر آن کس که استراق سمع کند و دزدانه گوش فرا که شهاب مبین او را می کند و میراند. راند والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا و انبدنا فیها من کل شیئی موزون و زمین را گستردیم و در آن کوهای ثابتی افکندیم و از هر گیاه موزون در آن رویاندیم و جعلنا لکم فیها معایش و من لستم له برازقین و برای شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم همچنین برای کسانی که شما نمی توانید به آنها روزی دهید. و این من شیء إلا عندنا خزائنه إلا و ما ننزله الا بقدر معلوم و خزاین همه چیز تنها نزد ماست ولی ما جز به اندازه معین آن را نازل نمی کنیم و ارسلن ریاح لواقح فانزلن فانزل من السماء ماء فاسقینا کموه و و ما انتم له ما بادها را برای بارور ساختن ابرها و گیاهان فرستادیم و از آسمان آبی نازل کردیم و شما را با آن سیراب ساختیم در حالی که شما توانایی حفظ و نگهداری آن را نداشتید و انا لنحن نحیی و نمیت و نحن الوارثون ما ایم که زنده میکنیم و میمیرانیم و ما ایم وارث همه جهان ولقد علمن المستقدمین منكم ولقد علمن ما هم پیشینیان شما را دانستیم وهم متأخران را وان هو یحشرهم انه حکیم علیم قرارگار تو قطعاً آنها را در قیامت جمع و مشهور میکند چرا که او حکیم و داناست ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمئ مسنون ما انسان را از گل خشکیده ای همچون سفال که از گل بدبوی تیر رنگی گرفته شده بود آفریدیم و, من من و جن را پیش از آن از آتش گرم و سوزان خلق کردیم و قال ربک للملائكة اینی خالق بشرا من صلصال من حمائم مسنون و به خاطر بیاور هنگامی را که پروردگارت به فرشتگان گفت من بشری را از گل خشکیده ای که از گل بدبویی گرفته شده می آفرینم فَإِذَا فا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ هنگامی که کار او را به پایان رساندم و در او از روح خود دمیدم همگی برای او سجده کنید فسجد الملائکه كلهم اجمعون همه فرشتگان بی استثنا سجده کردند إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ جزء ابلیس که ابا کرد از اینکه با سجده کنندگان باشد. قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ خداوند فرمود ای ابلیس چرا با سجده کنندگان نیستی؟ قال لم اكن لاسجد لبشر خلقتهم من صلصال من حمئ مسنون گفت من هرگز برای بشری که او را از گل خشکیده ای از گل بدبویی گرفته شده است آفریده ای سجد نخواهم کرد قال فخرج منها فان ذكر فرمود از صف آنها فرشتگان بیرون رو که رانده شده ای از درگاه ما و این عليک اللعنت الى یوم الدین و لعنت و دوری از رحمت حق تا روز قیامت بر تو خواهد بود قال ربی فانظرنی الى یوم یبعثون گفت پروردگاررا مرا تا روز رستاخیز مهلت ده و زنده بگذار قال فن من المنظرین فرمود تو از مهلت یافتگانی الی یوم الوقت المعلوم اما نه تا روز رستاخیز بلکه تا روز و وقت معینی قال ربی رب بما أرویتنی لأزینن له لهم فی ولا ولأغوینهم ولا أجمعین گفت پروردگارا چون مرا گمراه ساختی من نعمتهای مادی را در زمین در نظر آنها زینت میدهم و همگی را گمراه خواهم ساخت الا عبادك من هم المخلصین مگر بندگان مخلصت را قال هذا صراط فرمود. این راه مستقیمیست که بر اهده من است این عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبع که من الغاوین که بر بندگانم تسلط نخواهی یافت مگر گمراهانی که از تو پیروی می کنند و این جهنم لموعدهم اجمعین و دوزخ می آدگاه همه آنهاست لها سبعت ابواب لكل باب لکل باب منهم جزء و قسوم هفت در دارد و برای هر دری گروه معجنی از آنها تقسیم شدهاند این في به یقین پرهیزگاران در باقه های سرسبز بهشت و در کنار چشمه هستند ادخلوها بسلام من آمنین فرشتگان به آنها می گویند داخل این باغها شوید با سلامت و امنیت و ما فی صدورهم من غل اخوانا اخوانا علی سرور متقابلین هر گونه قل حسد و کینه و دشمنی را از سینه آنها برمیکنیم و روحشان را پاک می سازیم. در حالی که همه برادرند و بر تختها ها روبروی یکدیگر قرار دارند لا یمسهم فیها نصب و ما هم, هم منها بمخرجین هیچ خستگی و تعبی در آنجا به آنها نمیرسد و هیچگاه از آن اخراج نمی گردن نبی عبادی انی انال غفور بندگانم را آگاه کن که من بخشنده مهربانم و اند عذابی هو العذاب و اینکه عذاب و کیفر من همون عذاب دردناک است و عن ابراهیم و به آنها از مهمانهای ابراهیم ده. اذ دخلوا علیه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون هنگامی که بر او وارد شدند و سلام کردند ابراهیم گفت: ما از شما بی‌ناکین. قالوا لا توجال ان لا نبشرك بغلام علیم. گفتند: نترس ما تو را به پسری دانا بشارت میدهیم قال الا بشرتموني على ان بسن الكبر فبما تبشرون؟ گفت آیا به من چنین بشارت می دهید با اینکه پیر شدهم؟ به چه چیز بشارت می دهید؟ قلوب بالحق فلا من القانطين. گفتند، تو را به حق بشارت دادیم، از معیوسان مباش؟ قال ومن یقنط من رحمت ربه إلا گفت جز گمراهان چه کسی از رحمت پروردگارش معیوس میشود قال فما خاطبكم أیها المرسلون سپس گفت مأموریت شما چیست ای فرستادگان خدا قالوا ان لا نرسل الى قوم مجرمين گفتند ما به سوی قومی گناهکار ماموریت یافت این تا آنها را هلاك کنیم الا ال عوط ان لن نجوهم اجمعين مگر خاندان لوت، که همگی آنها را نجات خواهیم داد اِلَّمْ رَأَتَهُمْ قَدْ دَرُنَا اِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ به جز همسرش که مقدر داشتیم از بازماندگان در شهر و حلاک شوندگان باشد فَلَمَّا جَاءَ آلَ الْمُرْسَلُونَ هنگامی که فرستادگان خدا به سراغ خاندان لوت آمدند قال اینکم قوم منكرون. لوت گفت شما گروه ناشناسی هستی قالو بل جدنا که فیه گفتند ما همان چیزی را برای تو آورده ایم که آنها کافران در آن تردید داشتند آری ما مأمور عذابیم و اتینا بالحق و لصادقون ما واقعیت مسلمی را برای تو آورده ایم و راست میگویم فأسری بی بقطع من اللیل و اتبع ادبارهم ولا یلتفت منکم ولا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ احد وَمْضُونَ حیثُ تُؤْمَرُونَ پس خانواده اترا در اواخر شب با خود بردار و از اینجا ببر و خودت به دنبال آنها حرکت کن و کسی از شما به پشت سرخیش ننگرد و به همانجا جا که معمور هستید بروید وقضینا إلیه ذلك الأمر أن ندابر هؤلاء مقطوع مصبحین و ما به لوت این موضوع را وحی فرستادیم كه صفگاهان همهٔ آنها ریشكن خواهند شد وجاء أهل المدینة یستبشرون از سوی دیگر اهل شهر از ورود میهمانان با باخبر شدند و به طرف خانه لوت آمدند در حالی که شادمان بودند. قال این ها ضیفی فلا تفضحون. لوت گفت اینها میهمانان منند. آبروی روی مرا نریزید و الله ولا تخزون و از خدا بترسید و مرا شرمنده نسازید. قالوا ننهك عن گفتند مگر ما تو را از جهانیان نهی نکردیم و نگفتیم کسی را به میهمانی نپذیر ان گفت دختران من حاضرند اگر میخواهید کار صحیح انجام دهید با آنها ازدواج کنید و از گناه و آلودگی بپرهیزید لعمرو که اینهم به جان تو سوگند اینها در مستی خود سرگردانند و عقل و شعور خود را از دست داده اند سرانجام هنگام طلوع آفتاب سیحه مرگبار به صورت سائقه یا زمین لرزه آنها را فرا گرفت فجعلنا عالیها سافلها و امطرنا و امطرنا علیهم حجارتا من سجیل شهر و آبادی آنها را زیر و رو کردیم بالای آن را پایین قرار دادیم و بارانی از سنگ بر آنها فرو ریخت در این سرگذشت عبرت نشانه نشانه‌ای است برای هوشیاران و این نهویسببیلی و ویرانه های سرزمین آنها بر سر راه همیشگی کاروان هاست این في ذلك در این نشان است برای مؤمنان و این اینکه ازخبول عیک دیلووایمین اصحاب صاحبان سرزمینهای پر درخت قوم شعیب مسلما قوم ستمگری بودند منهم و مبین. ما از آنها انتقام گرفتیم و شهرهای ویران شده این دو قوم لوت و اصحاب عیكه بر سر راه آشکار است وَلَقَدْ لقد أَصْحَابُ اصحاب الحجر المرسلین و اصحاب حجر قوم سمود پیام بران را تکزید کردن و آتيناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین ما آیات خود را به آنان دادیم ولی آنها از آن روی گرداندند و کانوا من الجبال بیودا آمینین آنها خانه های امن در دل کوها می تراشیدند فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَتُ مُصْبِحِينَ اما سر انجام سیح آنان را فرا گرفت فَمَا عنهم ما يكسبون. و آنچه را به دست آورده بودند آنها را از عذاب الهی نجات ندار و ما خلقن والارض و ما بینهما الا بالحق و این نزاعت فاصفح فصفح الصفح الجميل ما آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق نیافریدیم. و ساعت موعود قیامت قطعا فرا خواهد رسید و جزای هر کس به او میرسد. پس از آنها به طرز شایسته ای صرف نظر کن این ربک هو الخلاق العليم به یقین پروردگار تو آفریننده آگاه است. ولقد لقد آدیناک سبعا و لقد سبعا من المثانی والقرآن العظیم ما به سوره حمد و قران عظیم دادیم لا دمدا لعینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنین بنابراین هرگز چشم خود را به های مادی که به گروه از آنها کفار دادیم میفکن و به خاطر آنچه آنها دارند غمگین مباش و بال عطوفت خود را برای مؤمنین فرو دا و قل و بگو من انذار کننده آشکارم ما برانها عذابی میفرستیم همان همانگونه که بر تجزیه گران آیات الهی فرستادیم همانها که قرآن را تقسیم کردند آنچه را به سودشان بود پذیرفتند و آنچه را برخلاف حوثهایشان بود فَوَ رَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ به پروردگارت سوگند در قیامت از همه آنها سؤال خواهیم کرده عَمَّا كانوا يَعْمَلُونَ از آنچه عمل می‌کردند. فاص دع بما و واعرض عن المشرکین. آنچرا مأموریت داری آشکارا بیان کن و از مشرکان روی گردان. انکفیناک المستهزئين. ما شر استهزا کنندگان را از تو دفع خواهیم کرد. الذين يجعلون مع الله الهًا آخر فسوف يعلمون همانها که معبود دیگری با خدا قرار دادند اما به‌زودی میفهمند. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ما میدانیم سینه از از آنچه آنها میگویند تنگ می شود و تو را سخت ناراحت میکنند. کنند فسبح بحمد ربک و كن من الساجدين برای دفع ناراحتی آنان پروردگارت را تسبیح و حمد گو و از سجده کنندگان باش و اعبود ربک حتی یکل یقین و پروردگارت را عبادت کن تا یقین مرگ تو فرارسد